فانی ولی به طلب در حال وجد و ترب بر عشق سجد کنان در مسجد ازلی در محضر تو ما سنی سننی می شاه و شیر خدا سلطان حی علی باب ورودی حق در کعبه نظری اسلام اسم تو خوش معشوق جل جلی در محضر تو شهاما سنی سننی می شاه و شیر خدا سلطان حی علی سبز سرت با باب دل نبویست دست سابقون علاست در کوس قاول بلی یا گوت اصلی خون یا گوت اصلی خون سرخ و اسیل تو باد رک بی تو شد قرمز بدلی